لا سیرابه به خون تشنه لب یار من است و از پی دیدن او دادن جان کار من است شرم از چشم سیه بادش و مشگان دراز هر که دل بردن او دید و در انکار من است بسار رخت به دروازه مبر کان سر کو شاه را بیست که منزلگه دلدار من است بنده طالع خیشم که در این قد وفا عشق آن لولی سرمه خریدار من است تبله اطر گل و زلف عبی رفشانش فیض یک شمز بوی خوش عطار من است باغبان همچون نسیمم هم زدر خیش مران کاب گلزارت تو از اشک چو گلنار من است شربت گند و گلاب از لب یارم فرمود نرگسه او که طبیب دل بیمار من است آن که در طرز قزل نکته به حافظ آموخت یار شیرین سخن نادر گفتار من است